سلام ارزاده، خدمت شما عزیزان بزرگواران من فاطمه سرابندی هستم یکی از زبان آموزان استاد رافعاد عمر خواستم با شما مطلبی رو در میون بذارم و اینکه در مورد شیوه که استاد در تیم خودشون به نوعی ابداع کردن و الله که شما هم بتونید در تیم استاد رافعاد بشین و از این شرایط استفاده کنید خب داستان از این قراره که من زمانی که نام میخواستم بکنم استاد فرمودن که من هم کد سود دارم هم کد تخفیف دارم و میتونم در زمانه حالا نام و شهریم از اونها استفاده کنم و علاوه بر این اگر اینکه من دان... یک از در یکی از ادارات دولتی شهرمون کارمند هستم و یا اینکه دانشجوی یکی از دانشگاه های دولتی کشورمون هستم و یا اینکه تاریخ تولد من با تاریخ یکی از تاریخ تولد یکی از اهلبیت یکی باشه خب بازم شامل تخفیف میشم خب با همه این من از همه تخفیفات استفاده کردم و استادیت نکته رو به من گفتن بودن شما یک کد تخفیف دارین که به هر کس بدین در زمان ثبت نامشون اون شخصی که داره ثبت نام می‌کنه از کد تخفیف استفاده میکنه و اون تخفیف اون سود برای من حساب میشه و برای من فرستاده میشه خب من از این نقطته قافل بودم و فراموش کرده بودم به نوعیم. تا اینکه چند شب پیش استاد رافادم من هاشمی به من پیام دادن و فرمودن که سلام مبارکت باشد کد تخفیف شما استفاده شد و برای دریافت مبلغ سود خودتون شماره کارتتون رو به ایمیل من ارسال کنیم. اما برای من جای سوال بود واقعا و اینکه هر شکه شده بودم و همشاید این پیام با من اشتباهی برای من اومده. به استاد پیان دادم که خب استاد من زمان ثبت نام خودم از همه تخفیفاتم هم استفاده کردم استاد به من یادواری کردن گفتم یادتونه که شما من به شما گفتم که همه همه اشخاصی که میان تو تیم مکالمه عربی و دارن عربی رو یاد بگیرن یک کد تخفیف دارن و من یادم قضیه افتادم و فهمیدم که آره من شامل اون سوده شدم و این به استاد احبتی این رو به من گفته بودن که این سود تا مادامل اون برای من فرستاده میشه اگر که هر شخصی از این کدی که من دارم استفاده کنه خب اون کد من رو آقای مهراب زینالیم استفاده کرده بود که کد تخفیف من MA, MA FS9923 بود که ایشون استفاده کرده بودن و ایشون تخفیفش رو استفاده کرده بودن و این سود برای من فرستاده شده بود خب استاد شماره کارت من رو گرفتم و برای من سودش رو استفاده کردم و من بسیار خوشحال شدم که اما برای که یه شخص دیگهی داره شروع میکنه زبان عربی رو یاد بگیره هم ایشون سود کردم به نوعی و هم من سود کردم و من خودم بنوی هر شخصی که داره در تیم مکالمه عربی به سرپرستی استاد رافعادم هاشمی اضافه میشه هم داره زبان عربی رو یاد میگیره و هم داره شاگردی استاد رو میکنه و هم این که کد تخفیف داره و هم کد سود داره و علاوه بر اینها مکالے عربی یک سایت داره که سایت بسیار جذاب و نظیری دارند که هم به زبان عربیه و هم به زبان فارسیه و از همه مهمتر اینه که یک فروشگاه دارن که کتب متعددی در اون هست که بعد از کتابو به صورت رایگان خود خب در اختیار همه ما قرار میگیره و بعضی ها هم شامل حالا هم پولی هست که باز هم اونجا شامل تخفیفات هم هست ما میتونیم این سوتتون رو برای خرید کتاب استفاده کنین کتاب های متعددی کتاب های, های عربی کتاب کتابهای که خود را استاد را من تعلیفشون کرده و بسیار کتاب های که من توصیل میکنم و همتون از این کتاب ها زمانی که عربی رو یاد گرفتین استفاده کنین و هم کتاب دیگه که آنها میشه استفاده کرد کتاب برای زبان عربی برای فارسی زبانان که بسیار باید شما بتونید روان عربی صحبت کنید و من رو و من این همه این اتفاقات رو اول لطف خداوند و بعدم توجهات استاد رفا آدمن هاشمی نسبت به زبان آموزای خودشون می دونم اه, که می همه کسایی که دارن باشون کار می کنن. لذت کار کردن لذت یادگیری زبان عربی رو برای همه در نظر بگیرن اه, و من از همینجا از استاد رفا آدمن هاشمی تشکر می که پدرانه برای همه همه ماهایی که داریم بایشون کار می کنیم دارن زحمت می کشم خدمت شما عزیزان فقط بگم که شما وقتی که با استاد راف آدم و شروع به یادگیری زبان میکنین علاوه بر اون دارین به افراد دیگه هم کمک میکنین که بتونن بیان بعضی تخفیفات استفاده کنم و علاوه بر اون برای خود شما در میشه و شما میتونین راحت شروع به کار کنین سوداوری کنه و این تا آخر اون بتون شامل حالتون میشه پس تعلل نکنین و شروع به یادگیری زمان عربی بکنین که علاوه بر اون میتونیم که در کنار استاد یک تیم خیلی بزرگی رو در سراسر جهان به وجود بیاریم که از ملیت های مختلف بتونن و از شرایط این تیم استفاده کنن و بتونن بزرگترین زبان جهان رو رون بزنن. و ما منتظر این لحظه و صفت این لحظه هستیم از طرف خودم و همه عزیزان که شروع کنیم زبان عربی رو با استاد و آدمرها شمیم خیلی ممنون که وقت کداشین این رو نگاه کردین خدا نگهدار.